اون که برتر ندارید شما فردفتیم که کتاب من داشتم کتابی دیدم که 2000 سالش بود اگه بیشتر نبود الان هزار سال بالاست که فردفتی اینو نزد کرده این چه هزار سال این چجوریست؟ اون سال قبل اسلام 500 سال دوره عشقانیست 500 سال دوره ساسانیست دوره عشقانی امرا نکومت ملوک و توافی بود بعدم حکومت ساسانی سعی کرد اونا آثار زیادی از خودشون به جهر نذاشته بودن چون ایلاتی بودن و اونی هم که باقی گذاشته بودن خوشش از این کرد دورت ساسانی که این رو مرد بنابراین این روایت ها چجوری رسیده بود سینه به سینه مردم مردم این روایت رو حفظ کرده بودن و بعد میگم چطور فارسی در این این حالا مطلب چیه فردوسی بلند شعری و زیبا شعری، یعنی اون لباس پاخری که باید تن این ربایت ها بکنه اون اما ماده خام ماده اول اون مساله که آجر و که میارن پای کار که بعد ازش خونه بسازن این مساله هم باید طوری انتخاب میشده که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 ازش استفاده میکرده موادی بوده که تمام مردم ایران اینو از خودشون میدونستن مال خودشون میدونستن اینو سرگذشت خودشون میدونستن هر کدومشون خودشون رو موظف میدونستن که این مطالب رو حفظ کنن نگه بدارن بنابراین اگه لباس بسیار زیاد باییم تنش میشه چی از این فهزن اینه که توفیق شاهنامه به هر دو دلیل این کار بود علاوه بر این این داستان ملی داستان های هماسی یک روایت که نبوده ده ها روایت بوده و من اینجا باید یاد خیر بکنم از دوست عزیز قدیمی تازه در گذشتهی مرموم انجدی شیرازی یکیگه هفتهی بیشتر از وفاتش نمیگذاره این ستجل کتاب چارسد کونسد سخیهی تحلیف کرده در درباب فردوسی و شاهنامه و مردم یعنی مثلا فرض و فرمایتی در فولان محل این روایت داستان سهراب چجوریه در فولان محل راجب کی خسرو نظر مردم چیه راجب شاهنامه چه قصده های بینی مردم هست ازار دوی سیست بسیار روایت های مختلف گردواری شده که هست و بعضی ها زندگاهات ها اعتمالا حتی در دوره فردوسی هم وجود داشت دلائل بسیار هم تارین بس.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 درشت می‌میخواست که دو تا قهرمانت بردرست می‌زاش دو یکی بیشتر من. یا مثلاً اخبار فرامرز دیگران دیگران هست مقادیر زیادی اینا رو پردوسی بعضی‌اشو قابل می‌می‌کرده یا از بین روایت‌های مختلف یک داستان اون که به نظر خودش به ذوق خودش بهتر می‌آمده اونو انتخاب میکرد. تا مقدار بسیار زیادی از عمرش سر این کار میگذره. ساه هنجا دو هزار بیته حالا بگیریم بیت که خودش با را هم گیشت سال این کار میکرده اگر که یو سال هم سی سال سی سال چست میشه هر سالی دو بیت. ماهی کمتر از ست ست و اینکه در سال میشون ماهی ما کمتر از 200 هست یعنی مثلا 180 هست 180 ریت وقتی مصرف ویروس کنی به طور چه روز 6 یعنی ما به این ترتیبی ای بخوام حجمی فکر کنیم فکر کنیم که ویروسی خیلی شایع کم بوده مثلا کاری نکرده 24 ساعت دادن شیش بید بگه. این چیزی نبوده ولی نه مسئله این بوده است مقادیر بسیار زیادی گرفتاری داشته در تهیه این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 در شاهنامه است و بعد اگر جای دیگه بعدها اشاره شده فقط اونم یه کلمه گفتن که بله داستان رستان سهره فردوسی در شاهنامه رو به نظم رو گفته ولی تو تاریخ تبری نیست تو مسعودی نیست توی کامل ابن نیست توی تار... ایش کنون اینا داستان رستان سهره نیست خب این از یه روایت محلی رفیگی رو برده دیگه و به دست رو برده و درسته حالا.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 همونجوری که حالا کسی که تحدیلات دامشگاهی داره به هر حال با زبون خارجی آشناه هست کم یا زیاد هم همینطور زبونی که باید باش آشنا بودن از کار علمی اینا زبون عربی اینکه میدونه حالا از خود سیارال مولو که عربی عرب مغفر استفاده کرده یا نکرده من نمیدونم اما در سال 346 هجری قمری بردیس په سالار بوده به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق ایرونی بوده حلاغمند به ایرونیگری خودشم بوده و داستان کهیل دمنه رودکی رو که هفته پیش عرض کردن دیده بوده و دیده بوده که با این سه هزار به کلیله رودکی اسم امیرنس سامانی جابیدان شد میخواد یک کاری بکنه یاد و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 و نه دونه این اشخاصو میگه کی از کجا آوردن کی از کجا آوردن کی از کجا آوردن کی از کجا آوردن اینها هم نشستن این روایاتاشونو رو نقل کردن بعد ها رو نوشتن و بعد یک کتاب جمع کردن و اسم این کتاب رو شاهنامه گذاشتن بنابراین در سال 346 کتاب شاهنامه نستری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 پیش از این کار هم یک کتابهایی به نظم یا به وجود داشت. یکیش شاهنامه به نام شاهنامه مسعودی مروزی مسعودی اهل مرب شاهنامه مسعودی از کلی در کتاب البود و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ دکتر شفیه کرکنی ترجمه کرده اونجا میگوید که مسعوبی مروضی منظومه ساخته به نام شاهنامه که مردم خیلی اینو عزیز میدارن جلد زرکوبش میکنن با جواهرات جلد رو را میکنن تصدیرها داره خیلی این کتاب و با عزت و اعترام با شفتار میکنن و اسم شاهنامه است و بعد تو بیت از اولش و یک بیت از آخرش هم به دست میده که اون دو بیت و اون یه بیت هم پر از تعریف و تحصیفه ولی اگر درستش کنیم و بازتازیش بکنیم و حالا چه چقدر با حسلم یه اندازه میشه یا نه او است که اولش بوده که نخستین یه مرد تا آمد به شاهی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 آخرش هم میاره میگه سپری شد زمان خسروبانا تو کام خیش راندن در جهانا این هم آخرشن آه. کام خیش این میبینید که به بحر شاهنامه نیست بحر شاهنامه بحر متحارب فعولم فعولم فعولم فعول متحارب مصمن مصور متحارب میگن بحری رو که هاش فعولون باشه چون چهارت فولان این داره چهارت فولان اون طرف میشه متقارب مصمن یعنی هشت هشت پایه فولان و چون یکی از این فولانها یعنی آخری دومش بریده هست فولان فولان فولان فول فاول. چون دومش بریده هست میشه متقارب مصمن مفسور و گاهیم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 تمام طرانه در سر و سر ایران از مندر گنابه تا مازندرون و آزربایجون میخونن همه به این وضعه و این روش میگن مهر حزج مصدس مخصور هزج باهی حوشنگ باهی حوشنگ باهی حوشن. با هزج حزج به وحری میگن که پایهاش مفایلون باشه مصدسه برای اینکه شیشت مفایلون داره ست این و ست اونگه بر. مخصوره برای اینکه آخرش مفایل. مفایلون مفایلون, مفایلون. تمام داستان های عاشقانه به این وضعی خب سوشیر نظامی بیسرامی نفخیزدین گرگانی و تمام کتابایی که به فیروگی از ما ساخته شده به این وضعی تمام ترانه های روستایی هم به این وضع یعنی بعدها این بحر هزج حاله شد برای داستان های عاشقانه و بحر متقارب حاله بیشد برای داستان های رزمی ترکول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 ابو علی بلخی یکی شاهنامه اول محید بلخی از هر کودم اینا یه تیکایی هم در تاکستان نحس شد و همچنین مثلا کتاب گرشاست اول محید بلخی که اسمی بره چیزش نرود می اینا همه جزه منابع کتبی پردوسی همه منابع شفاهیش ار کردم که رستم و سهراب در هیچ یک از منابع کتبی که باقی اون رو به دستمارسه نیست خودش هم میگه اولش میگه ز گفتار دهخان یکی داستان به فیوندم از گفته پا بنابراین این ما کتاب گفتار دهخان دهخان که هر کردم دهخان که دهگان گان پساون نسبتی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 از یه طرف هم مثل اون مالک های بزرگ گرفتار فساد ارز کنم که ثروت و نعمت زیاد نبودن خورد مالکی بودن، درشون شما می‌رسید میرسید، درس نی میخوندن، تحصیلی میکردن، علمی داشتن بعد کارهای اداری مملکت، تمامش به حسیل این درخانان گرمزه میشود از کارهای پاینتر تا کارای بزرگتر تا همین تا هم نگرد سرمونده یه نصفه ها تحجیزیم تمام علوم و دانش های عطر خودشون داشتن و حاملین تمدن ایرانی این طبعه ده خانه. و خود فردوسی یکی از این ده در بر چهار مقاله این سه حکیم عبول فاسم فردوسی از ده آقین توس بود از دهی که آن را پاز خانه اون ده هم هنوز هم هست ده هنوز هست در بشه این ده بود ده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 اندرسطرهای من, من مهربان دوستی بود من که شب خوابا نمی بود چلی چون شب روش بسته بفیر نه بحران پیدا نه کیوان نه تیر دگرگونه ها را رایشی کرد ماه بسیر بگذار که از پیشگاه چه و شب تیره بوده و از کنم نه مرغ و نه راهی داد زمانه زبان بسته از نیک و بد ماه که جوزی بوده به تاگشت بهره شده لاجورت پرده هوا را به زنگار و گرد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 نار و ترنج رو بهی بیار بهی همون به و ساز رو هم ساز کن و میویشنیم بزنیم و یه داستانی برام بگو که وقت من بگیم که میگه یار من به من گفتش که من این داستان میگم ولی به شرط اینکه که چون به نظم آقی از دفتر فعلتی به شرط اینکه که نظر. گفتم چشم وقتی که یه میگو سا، این دژ کانگ تو گفتی که آرود نیرنگ سا، و داستانو گفتند که بعدا من درست کنم داستان ویژمانی. من بنابراین سه تا امروزش کویدشته که یه آنان، یکی مودان، یکی اروپاگو.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 میگه که ملک و شعرهای قصیده یا زیبایی داره قلوس سیده فیتو و فلفرها که اون دفعه توضیح دادم یعنی چون که صد آمد نوت پیش ماست بعد از ساعت شاعر در دربار محمود حرف میزنه چهارتن در یک زمان جستن در دوران سریع پنج نوبت کوختن دست پرد و شاعری جاه آب رودکی شد تاغذ این چارو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 با خدمت هر یکی نیکو خلامان داشتن با کمرهای مرسط با قباهای زری درست بعد یه با چنان هشمت که بود جنگان اساقید بزرگ مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت برسری بندگان بودند و شاگردان بر استاد تو زن که بودش بر سخن سنجاون دوگان سروری من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو به هم در سخن فردوسی ارزامه را با انبری انبری هرچند ماشد اوستاوی بی, بی بدیل که زند با استاد توست لاف همسری هر چندان قوی آجز شود با موجزه چون کند با دست موسا سهر هاوی سامری شاهنامه هست می اطراق قرآن عجم رتبهٔ دانای توسی رتبه پیغمبری گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین بر زبان لفظدری جای زبان مادرینی عجب گر خازن فردوسی بود کو بود بی رب ربو نوع گفتاسدری شاعری را شر سهل و شاعری را شعر شاعری را شعر سخته شاعری فاوریدا پرپری آن یکی پند و آن یکی عشق مدی آن یکی دوست و شریعت آن یکی صوفیگری بهترین شعری از این اقسام در شاهنامه از مدیه و وصف و پند و عشق چون کشتنگری در مقام چاوغزاوئی چون بسشتی چرد در در مقام کیمتوزی چون پلنگ بربری دادان ها وسته چون زنگیر فولادین به هم کندران ها با معنا نماویت هم بری با وان بش از بر هر دادانی نوب نوب وسته از اندرز خوش یک دست گلبرگ تری شعر شاعر نظمه آزاد روح شاعر کی توان این نظمه را با افتون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 ترجمه به مخبر والا فردوسی گوهد آنچه در شهناه و اصلاف والا مخبری ای بر فردوسی و شهناه هرگز نکرد جز کسی کشنین عقل از وصنات نقصان بری چه و چه میگه این ددان با سعدی و حافظ همیدون دشمنم هم. که از شروع محمود خلق این بطان بطان آفدری در نبا افتاق قانونشان به پیچانند پوز از بر بستان دامنش پیش گریزند از خرید بعد اینکه شوهاه الملک یه قصیده در گفته بود و یه مزای در متح فردوسی شنیدم از شوهاه الملک و گشت من از خاندن شعرش بدین گفتن جری گفت شاقر شطریان در سالماغ افتاق نکین تاریخ نیکان یادشونی خوبن گری. اون تاریخ اند دو بیت. 363 یا به سالی کمتر از مادر بزرگ. 369 یا سی. 363 یا به سالی کمتر از مادر بزرگ. هم به شش تا پنج داستان گستری. سال 365 نظم پنج نازمش در اول می شد اسپری شانو ماست. ده سال دیگر شد آن استری. استرید برسی و پنج سالا در کتاب خیش رنج ماند از رنجی چنان گنج بدین فهناوری زنده شد دیدان از این شهناور و گرچه شاورش خونه دل خورد و ندید از بخت الا مدبری جود محمودی در آغاز جهان جهاندیش بود چون پوزوم شد گنج را رفت و عغمت معصری ضرب کف ناور زیرا کار فرمایان بودن بستن چون سکه دل بر نقش ضرب جهفری و بعدم راجب هزاره فردوسی نو برای هزاره فردوسی ساخته و میگه که حالا تا امروز که مثلا تجدیل کردن هست اینجا فردوسی این 35 سال رو تازه مثلا 40 سالش رو ده 329 تا 365 330 تا 165-36 سالش بوده که تازه شروع میکنه به نظم شاهنامه و قبل از اونم تهیه مقدماتش بوده 35 سال هم کار میکنه که 25 سالش شاهنامه رو تمام میکنه نظم داستانهاشو 10 سالی هم تخوال روتوشو تسهیه و سرودن تسهی و مقدماتو ارتباط دادن مطالب به همو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 برای یه ذره قرمه و یه ذره جو و یه ذره هیزان محتلی نماندن نمکسود و هیزان نه جو نه چیزی فضیده از تا جو پرو دوست و دوپای من آهو گره توی دستی و سال نیرو گره علاقی برای چرخ بلند بگیتی چرا مرا مستمن چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بگذار. مراکاش هرگز نه ها تو پرورده بودی نه یادوردیا. بل ولی همون وقت انصوری از سیم دیگتان میزد و از زر آلات خان میسا شنیدم که از فیم زد دیگتان زذر ساخ آلات خان انصوری بعد میگه که منظور اون شعری که در فیقیش خوندیم میگه کنون بشه از آن سیم و ذر و از آن دیگاه بشت به جز دود نیست آخطاری همه اونها اون رو داست ولی امروز اونطوریش نیست به برسید و این پنج رسید و مرحله و در داستان‌های های جمچید و حوشنگ و منوکر و نمینا بلشکرکشی و جنگ عجیب و غریبی که بازه چه جوزیاتش مثلا در داستان صحراف ها که با میزه چجور کار کردن، با شمچیر چجور زدن، گرد و کار بردن نمیدن. اینا نیست که صحبت اینه که آتش چجور مهار شد لباس چجور تهیه کردن حیواناتو رو چجور رام کردن نگه داشتن م آب چجور کشیدن از روز کنه جویا کردن آوردن زمینه رو آب پیدا کشاورزی چجور درست کردن چجور از توی کوها کوهدن به د و مسائل مربوط به آغاز زندگی این بخشش میگن بخش اققا در این اگر جنگی باشه، در ذر به چهار ساعت، سرسرش هم میاد و شرح و بست زیادی نداره. بخش هماشتی، به خلاف، حال موقعی که جامعه تشکیل شده مردم مستقر شدن، دارن کار میکنند، دارن زندگیشون اداره میکنند درشته بسیار عذیم هم داشته که یکی دامداری و حشمداری بوده یکی هم کشاوریگی این ها از یه طرف دو کاروات میکرد از یه طرف باید کارشون رو میکردن از یه طرف هم باید باید ما جلو حجوم کسانی که از دور را حتاف میریخن به سرشون و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 این هماسه دو کار میشه یک اینکه خودشون خودشون بتونن خودتون دفاع کنن دوبام اینکه به قول صاحبها بوکنامه یک کاری کن که پیش از آن که دشمن تو چاشت خورد بر تو چاشت خورد تو بر اوش رو هم گرده باشی یعنی دست پیشه بگیرن که پس نیوب کاره کاره بخش هماسی اینه بعد میاد تو بخش تاریخی که هر خیرم بخش تاریخی کم و بیش همون هستی در تاریخ‌های اول اسلام هم نوشته شده در تاریخ تبری، مورد زهب مسعودی، تاریخ همزه اسپانی عرض کنم که کتاب دیگه نظیر این هست متعدد که نه همه چیز همه همون مطالبه مال سوالبی، قرار و اخبار مروت الفورس و سیره هم که دو بار هم به فارسی ترجمه شده نه همون مطالبه فقط دو نکته رو برای یادآوری کنم یکی این است که بین بخش اساطیری و بخش حماسی خط نیست که بکشیم بگیم که از اینجا این چیزا اومده. گفتم کم کم بخش اساطیری تبدیل میشه به بخش حماسی. مثل سایه اوروشند مثل مثل سایه و نیم سایه به این ترتیب مثلا زاده شدن رستم در دوره پادشاهی منوچهر چه پادشاه اساس. بله همین طور بخش تاریخی یعنی بخش تاریخی هم بخش حماسی که وارد بخش تاریخی می‌ره خط نداره به علاوه بر از پادشاهان واقعی تاریخی مقادیر جهات تا خیلی نزدیک به اسلام اینا ورسیدن آستانه باج سرگذشتون شده مثلا فرض فرمایید وزیر بسیار معروف یک کسی میگم که دیگه هیچ هیچ کس نباشه اسم نشیده باشه وزیر بسیار معروف انوشیروان بزرگمه یا بزرگمه درستتر اسمش بر ما هنوز معلوم نیست که این وجود باقعی بوده یا وجود افسانیخبر یا قسته هایی در تنهانا در داستان ارزشی و داستان شااخور زل ااکدا ها حتی قه هایی در داره بهرممه گور و عوزشی روان طالی نه هست که مطما افسان و آمیخته شده باش. این است که تمام مطالب شاهنامه همضور، تبدیلش به طرز غیر و انسوسی درست مثل تبدیل شب و روز که روز به شب تبدیل میشه یه نیم ساعت سرو طول میکشه که شما نمیشه حالا روزه یا شبه و همچنین وقتی که شب میخواست بشه باید هست اینم همیشون این به طور کلی مطالبی بود که من نمیخواستم حرف کنم در این باب و راجع به هماسه فقط باید بگم که در حقیقت این داستان ها یه مقداریش در عوستا از عوستا گرفته شده یه مقداری از پهلوانان به یعنی کسانی که کرسی نشینه پاچهان کیان و پاچهان هماسی هستن اینا تو عوستای ازیادشون نیست روزم ازیادشون نیست یا گیو و گودرز، همتال اینا نیست بعضی هاشون ممکنه باشه در نتیجه باید ببینیم اینا کیا بودن حالا اینجا باید یه به عنوزه یه جمله. چهار به کل تاریخ ایران بگیم میدونید که تاریخ ایران بوده دوره حقامانشی باید حمله اسکندر بعد دوره اشکانی که چهارسدش سال, سال تو کشته بعد دوره ساسانی بعد اسلام مال اون دوره قبل من دوره خامنشی به کلی فراموش شده. هیچ در ساسانه در در هموتی اسم. اسمی ازش نیست و تنها سندی که پیش از اسلام وجود داره و در او از حکام گفته گفت شده یک کتابی است، مال یه مورخ سوریانی، کلدانی، نام ابن الابري، حبول ابن این هم عربی می نوشته، هم سوریانی می نوشته، در عربی اسمش میشه ابن در در سوریانی اسمش میشه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 سوریانی که ندارم، صحابت عربی هم به الواقع ندارم صحابت پارسی هم نمیدونم جای ندارم ولی به هر حال حرض کنم که اون عربی رو دیدن در اونجا راجب کوروش و داریوش و خشیارشا و اینا حرف میزنه و ظاهرا داره از منابع یونانی و از هرودوت و اونا داشته و این تنها جایی تنها است که ما داریم تاریخ ابنالعبری اگر انشالله وقتی بشه یه جوری که اون نسخ اثناء لبری ترجمه به فارسی خیلی با ارزش تر خواهد بود از عربیش و اینکه عربیش خیلی خراسانی اونجا راجخان جان هست ولی بازم هیچ کسی اینو نخونده باز هم کسی اینو به چیزی این نگرفته همون کار سنتیشون رو وقتی که یکی دو ساعتی از اینکه بنده برم به دبستان همون پیشدادیان و کیان و اینا تاریخ و هم ادبیات شروع می‌شد بنده یادم که سال سال 1711 که بنده کلاس پنجام متوسط برای اولین بار تاریخ وزارتی در وستان صحبت حقامانشی رو نمیدونن اینا رو پیشاورد البته قبل از اون مرحوم مشیر دوله ایران واسان نوشته بود ولی کتاب درسی هنو یعنی زشته بود کتاب درسی رو 1308 مرحوم با هاو مرک حقمی و تا هر تعلیف کردن رو دادن خطات نوشت و چاپ کردن و پخش در سراسل کشور و همین سال پنجام اولین سالی بود که همون جغرافی سوستان چیز شده بود که با جغرافی همون دوره ما دو دوره قبل از اسلام و از اسلام بود و هم تاریخش که پنجام قبل از اسلام بود و ششم و از اسلام پیش از او همون نخستین خدیدی کشور بشود سر پادشان که ارسود همون بود هر کلی فراموش شده است هر باره اسکندر ورد یه حرفی خواهم زد عجب این است که اشکانیان هم در شاهنامه کلی فراموست داد در کتابی دیگر هم تقریبا فراموست داد در این شاهنامه در حلود 22 فت راجب دوره عشقانی که طبیلتر از دوره ساسانی هر ست داده شده جان کلام در این 22 فت این یه بیتید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 میونه افتادن و گفتن که نه دیگه بهتری که اونم چیز نکنه او شاه برای اینکه بستگی پیدا بشه دختری داره و دختر این بخواد وسط سیاسی در حقیقت و تول صفا بشه به قبول میکنه و دخترو میفرستن به شهرستان دارا و این دختر یک شب بیشتر در شبستان دارا نمیمونه برای اینکه بوی ناخوشی از رو دهان او و مشامش باساط میرسه و هرچندم بعضی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 با با راه درنگ شد کوشید یعنی برادر ملک ایران از برادری رشته برادر دیگه. در حقیقت همه این محقضات برای این بود که مفصل ترین جایی که این قصه با شرح و تفصیل بسیار زیاد بسیار تفصیلی و بسیار شیرین باز گفته شده در دارالنامه ابو طاهر خرس اونجا به تفصیل تمام درباره این قصه ت برابر 4 اون تو در شاهنامه فردوسی اومده در این باب بحث این قصه مدتها پیش از اسلام جعل شد یعنی مردم ایران که عینن باز خیلی برخورده بود به رگ حمیتش اینا برای این که نشون بدن که نه مورد مملکت ایران دست دست نشود و پادشاهانی با اون عظمت حالا پادشاه کیان یا جاهه خامنشی اونجوری که در واقعیت تاریخش از بگیرید اینا اینجوری به باد رفتن برای اینکه بگن نخیر این قصه رو درست کردن پیش از اسلام و یه مقدار افثانه هم افثانه های اسکندر سر زبون ها بوده از طریق سوریانی و از طریق یونانی یک چیزهایی درست کرده بودن و همین قصه و همین قصه اسکندر که عرض کردن نک کنه بیوز این بازی ها نسخه آمده بوده و پیش از اسلام این قصه رو درست کردن و ایرانیش کردن و بابا رو درست کردن و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 رفتن به جایی که درخت سخنگو بودن به چرح شگفتی های دیتی که یکی از، یکی از مواد، یکی از اناسر داستان پردازی دوارا بوده از قصده هایی که درباره چیزهای شگفت‌انگیز دنیا کلیه ها و جهان دیدی بسی که دروغ بیرد دروغ <تصفح> از کنم که اینا کم کم کتاب می شده، می‌شده. می شده و یه سری کتاب هست در فارسی هست در عربی هست که نام کتاب های عجایب المخلوقات توی کتاب های عجایب المخلوقات حیمونات و چیزای خیلی عجیب و غریب هست با این هم چیزایی هست که حالا خیلی سفارت به نظر ما ولی صاحب صاحب یکی از این کتاب های عجایب المخلوقات بنام خازی زکری های غزوینی یک کتاب دیگری داره بنام آثار البلاد و اخبار العباد یکی من در گنجو اونجا ها این کتاب این کتابیام که راجبه نظامی قدیمترین منبعی که راجبه نظامی حرف میزنه این آثار البلاط اونجا میگه که رفتن در گنجو اونجا نزدیک شهر یه کوهی هست مردم میرن سنگ این کوه میکنن سنگ سیاهرو سنگوش و بعد میارن مثل یزوم میسوزونن و من اگر خودم به چشم خودم ندیده بودم و یک کسی به من میگفت که رو میارن میسوزونن میگفتم حتما تو دیوونه حالا ما امروز میدونم که این سوال سنگ اونتها خوب مصرفش و استعمالش انقدر هم میگیر نشده بود و سراخش نفت بودن قبل از اینکه نفت نفتشه و به این تحت یعنی قبل از قصه دارسی و این واضی که نفت بره برای در اختصال جهان زغال سنگ بوده بزرکترین منبع نشه هم هم کشتیات هم کارخونها, هم کارخونه هم هم هم فولاتگری ها همه زخارسنگ بوده بعد نفت جای اینا رو میگه به هر صورت کنم که یه مقداری از موضوعات و مرها و جانوران که تو این کتاب جار مخلوقات چیزایی افسانه و خیالی. و این ماده بسیار خوبی است هم اینا هم شرح باقی شگفتی های دنیا برای داستان پردازان که قهرمان خودشونو رو برم جااب گردونن و این شگفتی ها روش نشون بده هر جمله اسکندر میره و در همین شاهنامه، در میره و در همین شاهنامه یه مرداری جاهای شگرتنگیزی میبینه و اسکندر همون ظلمات رو میره و سایر مسائل و میاد اما عشقانی ها چطور شده؟ عرض گردم که این از یه ای سال دوره و از اسکندر تا اسمه این بیشترش یعنی کاسد از سال دوره ساسانی چهار سال شفافتاد سال دوره اشکان این چطور شدید؟ لواب این که اولا حکومت اشکانی حکومت اشایری بود اینا خودش نشین بودن و در نتیجه از خودشون آثار قمارت و مجسمه و کسیبه اونا باقی پمیزشتی کم میزشتی اینکه زندگی کوشنشینی نه اقتضای دفتر درسک میکنه نه اقتضای مذهبی بودن و خوشک مقدس بودن میکنه زنی که صوبه سهر وقت بلند چون یه چادری که سواریش رو دفتر کابیدن رو هر جمع کنه و و باره خر بکنه و تمام ظرف و بسائل و بسائل و بعدم رو بزرم کلش کنه و راب بیفته و ده بار برند دوباره اونجا به با کنه این وقت بودوب درفتن و کوروشو نماز نمازه نمیدونن ولی از زالین خلیده اصلا البته خیلی ببخشید درست هرزگی هم نده یعنی با این که زنهای اشتاده همه گشاده رو هستن همه رو میبینن همه میبینن چونها هیچ وقت شنیده نمیشه خیلی خیلی به ممکنه که بگن و تنها ممکن است که افسانه به این صورت استفاق یا که یه جوون یه یه رو بخواد و بعد اگه موافقت مکنن با هم فرار کنن بردن ازدباهات کنن و همان تمام دید، ارزگی تمام دید. اینا نیست خلاصه این این حکومت عشقانی و این چیز زیادی ازش باقی نمونده اون چه هم که باقی مونده بر که سنت ناپسند ممرکت ما که هر سبصده میاد سعی میکنه تمام آثار سبصده قطع رو از بین ببره و این همینطور از دوره عشقانی بگیر و همجور ادامه داشته تا جمهوری اونه کاجار ها امایدن صفاقی ها رو علشتن پهلمی ها امایدن کاجار ها رو این چند طول اماره به زور باقی مونده اینجا اونم کرکش کنده تمام این خیابانه ناصر خطرو و کاخ وزارت داره اینا همه خوابگان آسانی شما نگنش برهاد عرض کنم که برطبق این سنت ناپسند و اضافه بر این چون حکومت اردشی، ساسانی ساسمی، مقومت دینی بود مفنای دینی داشت یکی از اقوامات بسیار مهم مردشی این بود که دستور داد که عوستار و کم آوری چه بکنند چه بکنند به این عنوان که اونا دین بودن یا دین نداشتن یا استاندار نمی‌سوزنده بود هر حال حقیقتم این است که زندگی کوش هم که هر کردم خیلی با با دامغاصی مذهبی و مقدس بودن و عبادت آدم تصدی مذهب نمیتونه باشه به جمال که معروف یه تاریخ ایرانی نوشته خیلی جالبه به خصوص بخشی تو کلی شاهجه بودار دوری خواهد جارن دوری فتح علیشه ایران اون گوزگار خیلی خیلی خوندنیه اینگه که شاسبان ها خیلی چیز ندارن خیلی تأثیب دینی ندارن اصلا دید آسان گیرن در سورای مذتب باید یه قصه این ها امکانیم که یه خان شاسبانی بود و این میواد مشکنچه که خیاب بود نبلا نسمش میواد اونجا و پیشه یه حجی سقط بروشی و غنده چایی رو تو تفاق و غوره معظیم ماراکان میگرفت و میرفت و هی میزو حجی تو یه روز به شما منطور من رو اونجا حجی هم من کاسه و من نمیتونم نه بلاخره اصرار ابرام و بلاخره حاجی رو میورن و چادری برش تحتیل دازن و جای بسیار منظم مرتب بیار شما خیلی خوبی و پذیرایی به نوازی خیلی خیلی خشنگی چنان که عادت زی حاجی میخوابه، میگه صبح من پاشه و موضوع گرفتم و نماز خوندم و هر و عادت من یه حزد یعنی یه چهارم جز و قرآن هر روز صبح میخوندم به صدای گونن میگو من شروع کردم به قرآن رو خوندم یه دفتدم یه مو... چماغ محکم از پسی برخوردی سرم کندم فرگشتم دیدم زن خان پش و فضاعت که مردی که کی مورد رو زنی قرآن میخونی <تصفح> با دسته جارو زایی سفر منو خان اومد و زنی کارو دورش کرده گو برو گم چون وی تحبیتی کردی اونو فلان عزی حرفا و براخره زن راحت کرد و باید به حاج آقا خیلی میخوام شما مهمون عزیز ما بودیم خیلی خیلی عوض میخوام جسایت کرد این من حالا تنبیهش میکرم عزی حرفا بعد دلاجی بعد وقتش که اما خب شما هم اول تحصیل میفرمیدین ببینین کسی مورده برگراه کنیم عرض کنم که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 یادی از اینا باقی در حالی که اینا پاترهان بسیار دلیری بودن بسیاریشون مردا ایرانو خیلی به دقت حفظ کرده بودن خیلی آدم درجه اولی بودن و مردم یادگارهای بسیاری در ذهن خودشون از دلیری ها و فهلوانی ها و چیزای اینا داشتن اون سورین سردار عشقانی دیگه از بزرگان پاترهانشون همثال اینا و هر مفیجه هست که از بین رفتن یعنی اسمشون از عرفه تاریخ رفت بیرون این شاهزادگان عشقانی تبدیل شدن به فهرمانان همسته رستم و گیب و گودرز و بیژن اینا, اینا همه شاهزادگان عشقانی هستن به صورت فهلوانان کرسینوشین سلطلی کیان در اومدن یا آقای اما آقای هستی در یوتا الان استاد فارسی آقای لئوناردو و آلیشان به نظر هم آسوری هم هست مقاله های نوشته انگلیسی درباره باره رو بحث میکنه که روستان همون سورن سرداره بزرگ نشد به تمام مثال هم بحثش رو زیادش نمید حال، اگر بخواید ببینید که این راستانه هماسه چجوری پیلیزی شد ترتیبش که اول مایش از اوستاد بعد هم به مرور ایام قصه پهلوانی های بزرگان و ایران آمده روش و چیز شده و این قصه ها کم تراش خورده تخنگویان شبها این قصه, هایی قصه, هایی قصه, هایی قصه, هایی قصه هایی که باز میگفتن هر کنین که زوغی و فریحهی داشتن اونجاهایی که ناستازی داشته و یه خود و قیدی زمخت بوده با زوغ مردم ملایم و مناسب نبوده اینا رو کم میکردن و زیاد میکردن و افثانه ها به این صورت تر اما فروسی هم در این کار بسیار اثر داشته و اینکه بسیاری افثانه ها بوده یه نظارش رو تا به کلی پرو گذاشته مثلا قصه گرشاست جد فروسن بدون هیچ تردیدی وجود داشته تو تاریخ سیستر حضیش ذکر کتاب گرشاست از عبالماید ورسی هست بعد هم اصد یه سال بعد نزمش کرده درشت ها چون رو نزمش اون چیزی که بعد از تای دوتی باشه در بری فروسی بوده ولی نه ای برده نه خواسته شوید نخاصی که دو تا فهلوان در جی یک در شاهنامهش باشه یکی بیشتر نمیخواسته باشه به رستن رو گذاشته یا داستنهای برای فرامرد دیگران دیگران دیگران بوده که اینا رو فرو روایت های متعذب درباره همین داستان که فردوسی آورده ها و حتی بعض ازنان نخوش شده اگر بخواید که ازش تو اون سه کتاب مرموم انجبی شیرازی که خدا رحمتش کنه همین چند روز در جلشته روان سه کتاب بره به نام مردم و فردوسی و مردم و سه اونجا روایت هم مثلا داستان سهراب رو میگه فرض بفرمایید که یه روایت که هم بطرگی هم شنیده بودم میگه که روایت هم گفتن که بلایی تو چهل روز نخوابی و اینو بزیر روی طور روستایت راه بری و بیدار باشی این برای چهل روز این خوب میشه برای روایت میکنه و اینو میزه روز سرش راه میفته و نه روز راه میپنه روز چهلا میبینه یه زنی نشسته یه مباری کانه سیاه رو میشونه دوما در چی کار میکنی؟ حالا رو حضور اگر من که چهلا رو میشونه داره میگه برم این کنار ها که بلکه این بره میگه خانم آخه سیایی که به شستن سفید نمیشه میگه چطور سیایی به شستن سفید نمیشه همون بچه مرده به دوره گردوندن زنده میشه یکی رستان این هم بهش برخواده نگوید زمین سرابی آه کشتیم بود اینو من بچگی شنیده بودم بعد دکتر خالدی مطلق نمیشتیم که روایت بسیار قدیمی و ارمنی هست یا هاشوری یا، یا یکی از این جاهای اقوام و عقلیت و ساکن ایران که این روایت ماسته از 800-900 سال پیش تو کتابش نزفت کسیم بسیاری از این روایت های که بوده با اقسام اینا رو ازوسی فرو گذاشته و بهترین صورت که کرده. کرده، عشت آورده، در, در نتیجه این جاودان شده. اونها منظور توی آبان مردم جاری بوده، بعضیاشون ازگردون خراب شده، هم هنوز باقی مونده، متأسفانه قدیمام که توجهی به این قرار نشد. من یادم میاد داستان سیاوش گویا که در جوامع الهکایت عفی دیدم، البته خیلی مختلف، در ولی با مال فردوسی فرق داشت اصلا. چون اون وقت جوان نشده بودم اون داستان نقل کردم جوان رفتان, دا رفتان دارده مجلی سخن تراب کردن عنوان روایت دیگری از داستان سیاه باشد. از اینو رو فراه بود نه این است که همین یکی بوده و فردوسی به همین تصیب اما اول فردوسی کاری کرده که هیچ یکی از اینا هستی فردوسی کاری کرده که هرگز کسی به هرگیمش دیگه نزیدیک پیش هستون نشد بعد هستون نشد و یقانه است بنابراین میتونیم این نظر رو داشته باشیم برزارویس تخمیزی هم نظر ما تایید میکنه که اگر شانها یه بارم سروده شده بود چرا که یه بارم سروده شده بود محفوضی محفوضی سروده بود باز بعد پردورسی بیادی رو بسازه تا جا بیدن بشه میرفته از جا این یکی دوبام این که ما میدونیم که فردوسی بسیار به اون روایت هایی که نعخونی کرده امین موده و حتی گاه کلمه به کلمه بعضی بخشا اصل پهلاویش در دسته بخش مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی دفت داشته و علت اصله این هم این بوده که فردوسی فکر میکرده که این حقیقتاً تاریخ ایران و در نتیجه مثلاً فرض فرموید این نکته ایست که کسی بهش توجه نکرد. می‌دونی که همه میدونن حتی از هر آدم تو خیافونم توی‌رون بپسید که اسفندیار چی بوده می‌گن روینتم اسفندیار هم می‌گن روینتم بوده روینتم یعنی عطل از دنش کار نمی‌ده فردوسی در داستان روستم و اسفندیار هیچ جا نمیگه که از خور خوش که اسفندیار روینتم فقط وقتی که با تیر می‌زنید چشهش می‌گه تا آنی که گفتی که ر یعنی موزهرف میگفتی قرانو برزن این برزنه یا مثلا شرح جنگو که میده نمیگه که رستم تیر مینداخت می خورد به اسفندیار مثل که دیوار خورد می زمین میگفت تیرای رستم به کار نمی آمد. یه جوری که مثلا میشینت مثل رد علاوه‌ از اینکه اصلا رو اینطره هم وقتی میگن یا مثلا شکست نپذیر وقتی میگن این به منظور مبالفت دیگه در حقیقت الاو گوشت و پوست که نمی‌تونه با فوراز چیز بکنه این از که فردوسی چون یقین داشته که این تاریخه به نظرش معقول نمی آمده که کسی رو این تن بشه رو طول که مثلا نیزه تو گوشت رو یه جوری اینا این داستان و داده که اگر بهش می‌گنه نه تو گفتی رو این تنه حسان جدن و هم ببین خلاص غرط هم این است که خیلی زحمت کشیده در این کارها داستان اکوان دیو که میگه اول شروع میکنه یه مظهر مقدمه ای راجع به فلسفی که آدم فلسف باست به محب مزهرت که آدم فکر کنید که این اون چی از نست سر داستان اکوان دیو ایا فلسف دانه بسیار آدو ایدن یا یعنی چیچوی از این حسا بعد دلاخره میرسونه به اینجای که تو مردی برای مردم بد شنات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 این پردازین به خود شاهنامه منتها ها هر کتابی چنان که میدونید شاهنامه هم از اون نیست یک مقدمه منحولا محلف ممینی میسید چونه مثل این که گفتم قبلا که هم در و نه که پیغمبر هست و اگه شاهش شیه باشه احمد و اگه سندی باشه خرافاست و فت فت مرد فاتران وقت رو و بعد مرد حناسان کسیست که او رو وارشت به امسپار رو باید هر که خودش لازم بدونه از قبل یه سواب کتاب نمونه این توی در سر آسر عدب فارسی از شعرون از هر دو یک دونه کتاب هست که اینجور نیست. اون مصنوی مولان هست مصنوی بی آغازه و بی انجام بشناو این نی یعنی خودش چون شکایت میکند از جدایی ها که آیتی آخرشند داستان یا قصد هیچ مقدمه ای مواخری ولی همه کتبایی دیگه داره و این مخطمه شاهنامه تردوسی بسیار خوبه و جالبه ولی من الان او رو میذارم برای اینکه من میذارم رو مطالعه کنین و احیاناً چیز کنین من بیدم تره سالی بی که درست مرد بود خوشه به متن شاهنامه و در اینجا قبل از اینکه ایگه یه بارم اینو خوندم حالا دوباره می خونم از اینم که میگه تو این راه دروغ و فسانه مدام به جای اگر کتاب داره به جای کتاب و تک 14 تو این راه دروغ و فسانه مدام به یک روش زمانه مدام از او هر اندر خورد ماخرت که خورده دگر بر ره رند معنا برات حالا ما کوشش می‌کنیم که یه مقداری از این راه رمز اینجا تا اونجایی که زورمون میرسه یه خوده اگه بشه انشالله حل بکنیم میکنیم. میگه که سخونگو یه ده دهخان سخون بوده در تمام شاهنامه کلمه سخن با مثلا مکن با بون حافیه ما که بچه بودیم میگفتن که خب قفیه تنگ بوده آورد اولا برای فروزی قفیه تنگ نیست یک دوبار میکنه هر جا سر بسر شنگه قفیه سخن تنگ بوده نمیشه که بعضها کتابهای قدیم پیدا شد که اعراب گذاشت بودن کلمه رو در قدیم طرف روز سخون کم کم در تداغل آم شده سخن خوب سخون با بون خافیه میشه یه فیروسی بودی که شعر خودشون نخونده این نمید که سخون این با بون خافیه میشه تنها چیزی که فتحه داره باش خافی شده کهانه به که اینکه کهانم کهان بوده ولی بله هیچ شخص مثلا سخن با تن مطلقا خافیه نشده حالا برای این محضبیم رجب دهخانم نمیدونم گفتم یا نه برای تون دهخان از دهخانان سوست سو باز کردم حالا اینجا اولش اولش آنامه روایت از دهخان میکنه سخونگوی دهخان چه رویت نخست که تاج بزرگی بگیتی که تو که بودان که دیهین بر سرنهاد نداند تسان روزگاران به یاد مگر کس پدر یاد دارد پسر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 اینطور فرض می‌کنه یا اینطور روایت می‌کنه که بزرگتر تا جوزش می‌کنه که این تا چیشی؟ تا کجور که نبودی که چند جایی کش میگه که پس پوست می‌خوشتن، پوست حیبونات رو تنشون کردن قصه از این است که امسونم، مثل بسیار یک حیبونات که درست زندگی می‌کنن و به خصوص اون گله های شکار اینا اون پیرترین و تجریداترینشون رو که شاخهای بلندی هم داره بزرگ شدیست یعنی نشون این از سال پرده هست اینجا لوه رو رو داره میاهد بو میکشه از این بنابار که, که میبینه آفتی گرفتاری چیزی نیست وقتی که دیزنی اون بر راه میده که دیم.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 هم نشان پیغمبری بوده هم نشان پادشایی مثلا یه مشکوره که معجزات داشت چه داشت؟ چه داشته ولی برای اینکه تشبیه میکرد اینا رو به چوبان و چوپان یه چوب هم دستش بود که برای مقابله با گرد اینا باشه و بعد هم روحسای قبیله یه انسان ها محمولاً این چکارهای کودویه که میگرفن که شاخ داشته این کله اینو خود در میبردن اینه میشن رو سرشون اون شاخهای بلنده دراز برای اینکه عنوان رهبر جامعه شناخته شد و حساب هم هر دو نشان پیشباهی رو پرمونده این کنگره کنگره شدن تاش که تا در همه دنیا کنگره داره میشن اون شاخهای پیچیده اون چیزش که نشان زن و این رسم هنوز در ترکیه برقراره که یه چیزی شبیه رسم کوسه برنشین در, در اونجا هست که کسی پادشای دروغکی میشه و این پادشای دروغکی هم کله چاختاره چیزه سریش میداره و همچنین کلاه رستم که شاخ دیب سفید هست که البته چنین چیزی هیچ جا توی شاهنامه فیضوسی اشاره نشد دید مطلقه ها که رستن کله جیب سفید و کند و فیل کرد یعنی برد پاریش استفاده کرد دوم اینکه شاخ داشته ولی این شاخ نشان رهبری و بزرگتری بوده بعدها در داستان جمشید هم می که جمشید عطا داشته و این یومرس هم که ساج داشت هیچی نداشت تنش لباس نبود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 ندارد کسان روزگاران بیاد میگه این تاج سرگذاشتن مال روزگاریست که هیچ کس بیاد نداره کهی بوده یعنی قبل از تشکیل هر دولت این خبیله های نیمه وحشی دسته های انسان ها که بیاندن اون رهبر خبیله که هایانانستان لختم بودن این سرش بوده اگر از پدر کس پدر یاد دارد سر بگوید تو را یک به یک در بدر، چون این گفت که نام بزرگی که پیش که آبود از آن مهتران مایه بیش چون گفت پایین تخت و گلا گیومرد آورد و او بود شا. در عوستا گیومارت از گی یا مره تن به شده گیومرد یا گیومارت یا گیومرد سه و سه یه در است یه سه سنفتهی داریم که درست نسید یه چه ای انگلیسی تلخش هم در حدث داریم هم در فارسی ورسان در هر دو زبان باستانی که ازش در درست داریم این حرف رو داریم بنابراین این هست گی و مرد تو گینه میشه هم دارم هر به گی امرت هم یعنی انسان فانی انسان مردنی چنین گاکاین تخت و کلا گی و مرد آورد و او بود شد اینجا باید بگم که در میدونید که در ادیان سامی امسان اصل انسانی داره و خدافند او رو ید قطعه کولش آدم محفو رو کرده و در حقیقت از آلم دیگه آمدن به دی این روی زمین این است که هشت آمده همین هم باعث شده که اون عده که طرفتار این فرضی هستن که حیات تذکرات دیگه منتقل شده به زمین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 بوده بوته ریوات دغلو بوده که میگه اینا هم بزرگ شدن، بلند شدن بعد تبدیل شدن به آدم داستانش هست در کتابای دینی به خصوص در که کتابای دینی مثل دینکرد و بندهشن اینا, اینا هست اما چرا این تفور پیش آمده؟ یه گیای هست به نام مردم گیاه مردم گیا گریشه این گیا این آدم من این رو البته کچی عزیزتن بزرگ اما به قدری شواهت داره من اینو یک بار در آمرا میشتن نیدم من در فاریس در یک دواخونه این رو مواد چیز گذاشته بودن پشت چیز پشت و پشت بیترین که همه ببینن این این آدم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 بعد میگه که اولین انسانی که به وجود آمد کیومرس بود که سوی سالم بیشتر نبود و بعد از سی سال نطفه ای از او جدا شد رو به زمین چکید و بعد نسل انسان ایجاد. او در آمدن این رسمت هم در فردوسی نیست فردوسی کیومرس رو به عنوان اولین انسان و اولین فادشای و معروم کریستنسن دان مارکی. کتابی داره درباره همین نخستین انسان و نخستین پادشاه دو جلدم هست یکی از بهترین استادان دو تا از بهترین استادهای دانشگاه تهران دو تا احمد تفاضلی استاد قرآن اسلامی در دانشگاه تهران و با اون تفاضلی هم اثباتی نداره و دکتر تر آموزگار این دوتا این کتاب رو مشترکن ترجمه کردن و چاپ شده. و من نسخهشو دارم و علاوه فرانساشم میشه اونجا بحث مفصل در این باب کرده به حروض 400-500 دفعه و تمام مدارک و حسناد و مطالبی که هست و هر همه رو رسجو کرده و داده و اگر دوستا میخواستا اطلاعی در اون باب باشن به اون مسائل روزو میکنن بنده اینجا فقط همین گیومرسو میگم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 تاریخ نوشته بود برای سال پنجامه سال شیشونه در دستان که بسیار چیز فشنگی هم بود بونگا و بونگا هستانکنی هم در نهایت زیبایی و تفسیرهای بسیار خوب کتاب چاب کرده بود اونجا هم همین مطلب هست که آدمیزاد اول شکاف آفکو عشق آفکوها دوتا تو باشد شاید هم بیشتر از دوتا داشته دوتا شما علمه می ده. یکیش این که قدمیزاد لخت برهنه این سردش میشود گرمش میشود طبیعت تحملش ندار در شکاف کوهان حواستاپی قار بود مثلا پنی دریجه ده تکره زنستان تابستان تابستان خونک بود زنستان گرم و اونجا زنستان یه دوم این که بشر هیچ وجه نمیتونه در برابر حیوانت درنگی که به مراتب عزوزتری ترودن در دشت از خودش دفاع کنن میدونید میگرد چیه شکاس کوه میپیشید یه جا حیوان در یا نمیتونید راسته به این ترتیب هم برای حفاظت خودش از خطر خیواناتو درونده و هم برای حفاظت خودش از گرما و سرما و خهر طبیعت بشر اطلاعی از کون زندگی کرده و فقط وقتی که آین کشاورزی رو فرا گرفت و باید روشی خودش رو در دشت ها جستجو کرد در این حال استعمال ابزار رو هم آموز که اولین و سازه ترینش همونطور دستی بود که هیچ خیبونی ابزار بکار نمی‌بره و مارکسیسا خرق آدم با و قیبون رو همین می که انسان ابزار رستش کرد بنابراین تکامل پیدوشند البته بسیار چیز داری که ابزار حالا خواهد اون محضب نداشت برحال ابزار خیلی مهم بوده تونه تناخضا برای خواهد درست کنه ابزار رست بگیره کشاورزی بکنه اون وقت رو که از کوها سرازیر شد و اومد پایین ولی این اینجا فیدروسی میگوید که وقتی که کیومه است و جهان کد خدا شد نخستین به کوهن در اون ساخت کاملا درست و با مرازین علمی صد سد درست یک کلمه درباره در خدا بگم کد قد و کده به معنی خانه است می کده یعنی می خان کده یعنی بود خان. گاهی به صورت مثل کده که میاد خود و می کده گاهی هم به صورت پیشاونده مثل کت خدا و کت بانی به مورد استعمال هم در پارتی امروز حفظ داره تو دفنهای نومبایی هم تاختونی هم تنگکی یه اوتار خوشلوی انبار خوشلو بود آرد رو میاردن زخالی می بعد یه کسی بود که شما هم پیشکار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 و اینکه او با زن جپونیش که نمیتونه کشید پدر و مادر و خوهر تو بردر اینو بخش نمیشه. این است که بهش میگن کد خدا شد یعنی صحاب اتاق خانوم میگن کد بانو یعنی بانوی خانه هم به همین معنیه خانه و انی اتاقه و این که حالا خونه رو جای صحاب کار میبرن درست نیست هنوز خانه یعنی اوتا یعنی اتاق یکیش عشپت نیست مهمون خونه یعنی میکنه. خانه منی اتاق همچنین قهره خانه اونه من همه همون کده در وقتی یه بر جهان کد خدا شد یعنی صاحب و مالک دنیا شد یعنی فرمان روا شد تادشاه شد که خود چون بر جهان کد خدا نخستین به درون ساخت جا سر تخت و بختش برا آمد ز یعنی اولین دستگاه دولت و تحسیس قویله و جسدیسی مقرراتی بهش حاکم داشته اول از کوفه سر تخت و بختش برا آمد ز کوف پلنگینه پوشی خود باز بروه. اینجا مورد از پلنگینه اون اینه پسمند صفته مثل زردینه و سیمینه و پشمینه و همثال اینا موینه و پشمینه پلنگینه هم یعنی پوست پلنگ اونجا اینجا مراد هر پوستیه و حقیقت این است که بعد از اینکه این حیوانات این گوشتنم می می‌خوردن اولا باید پوست رو دقت می‌کردن و نه نمی‌شه بخوری حیوانات وقتی می‌گیرن چه کارشون؟ من شیر رو دیدم که گرفته بود یه گاو و اول با دقت دقت کارها پوست رو کنار بعد از اون گوشت رونش که شدخنه داره از اون پوست کاملا پوست رو این پوست بعد کم کم خوشکش میکردن استفاده میکردن برن دور لباس دیگه یعنی فردشون بود کلشون میکردن کاش میکردن و مدت ها هیچیچ هیچ چیزی که یه تخته باشه هیچی باشه مثل،, مثل یه وقته باشه که باشه. بنابراین د به طور مسلم اینا به یه تحطیباتی که من نمیدارن تجوریود پوست به عمل میوردن و تنشو میکردن هم هیچ چکیم بنابراین اینجه که سر تخت و بختش تر آمد به کو حلنجی خود با گروه بخت قسمت بعدی واز گرفتاری داره یه قدری اینه که ازوی داره به نفسی کشیم به همین برو تی بر اون او سی به خوبی که خرشی برگاه همی تا زود فرد شاهنشاهی که ماه دو هفته به فرد رو من توضیح بدم و او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 یک جا می که جمشید وقتی که ناسپاسی پیشش کرد و به روایتی تکبر و منی که و در کرد و, و روایت دیگر دروغ گفت و, و حالا دو جا چون کار نداریم میگه گه ایزدی سه بار از او به صورت مرغی جدایست بار اول گویا رو خیاده نیست اون فره رو مثل اینکه که به ایزد مهر رسید دوتلا یاده نیست احتمالا تو این راستان جنگ رنده نگاه کنم بار دوتبام چه فره عزیز ددا شد به گرشاست رسید و گرشاست دوت جاویدانان درامه بار ست بوم که گدا شد که از پدر و پسر رسید به سریزین و قوله دید بعد میگه صورت یه مرگ صورت باد مثلا مرگ شکاری از او شده, شده جای دیگری در همون داستان اردوان که اردوان که ارچین زدیم اولا اردوان یه دختایی داشته و این دختر عاشق اردوشیر میشه و اردوشیر هم اونجا اردوان در حقیقت فردش کرده بوده برای اینکه گسارت کرده و دلو پادشاف به صورتی که برای او قابل تحمل نبوده اظهار وجود کرده و بعد چش کرده بودن ولی خب اقل دخترک به اون مهر آورده بوده و بعد قرار میزرن و میگن و می که خوشبایتون بشه و ازدواج رو اعلام کنن و بعد هم فرمولی برمیدنن تحصیباتی و دختری موقع مراسب رو هم تشکیف میده که پلان روز باید بریم و اصلی و مقداریم چیزای سباکبرد و سنگین قیمت با خودشون برمیدارن و میرن خب اول گمسدن دختر منعکس میشه در حرام سرم کاشف و عملی را دیمونم هردشی را یه چیزایی هم بو گرده بودن که اینا با هم یه سر و هم دارم سر و سرشی با هم دارم میتازن با وزیرش میگه که بیا بریم به دنبال اینا بگیرین میان حالا گروهی هم همراه شده نبوده به هر حال میرسن به جایی و میگن که شما ببخشید با یه عرض میرن میگن که شما یه زن و مردی رو ناییدین اینجا برند گفتم چرا مرد جوان رو دیدین هستی بود ما دختری هم سر کششسته بود و در سر می اینا میش سفیدی هم دنبالشون نیکن وزیر باز چیز که بریم به سرعت میرن و به سه دیگری میرسن باز میپرسن و باز میگن بله دیدیم از اینجا گذشتن مثلا یه ساعت پیش بود و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 از اینا مظاهر مادی بوده که برای اینکه مردم حالیشون بشه ولی حقیقت این است که چون این جنبه الهی داشته بعد میگه که وقتی جمشید فرده ایزدی از اینجا شد اون وقت بخت ازش برگشت و زهاک با اون غلبی کرد و آمد و متواری شده چشم بچشم این فرره جز اجزای مهم شاهنشاهی، و همونش چش کردم این بر حقیقت تعیید الهیست که تا وقتی که هست پاترها هم پاترهایی داره و وقتی که برگشت دیگه از پاترهایی میفته به اعتقاد خودم هست. این است که کیومرث هم به عنوان اولین پادشاه، بر برش شاهنشاهی همچاهی میگه مثل, مثل همون حالی که دور سر به تیسی می کشن بل سفن اگه <تصفيق> نباشه فر فرا پا رشه ی و فرو با که به پیش میبره با با نه رحال ارسان چاره که اینجا این پرسه که من اینجا ببینم که وقتی ازش دوده شد یا گرفتن ارسان چه نه توی این داستان جمعی در دکتا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 چی اومد بی جمره سن سی سال بود و حرک کردن و اون نطفه چکی روزه شو بعد هم مشی و مشیانه رویدن و بعد هم این آدم شدن از اون اندر آمد دیت اول از اون اندر آمد همین پرورش این رو هم کردن ایز این رو قرص برنم که باید که حیبونو می دویدن دنبالشو دو سرعت و بدبختی و کمین و فلان اینا باید هم کراکشی میتردن میخوردن باز دوباره دوباره با میهایی وزید بعد فکر کردن که اگه این حیبونو در دست خودشون داشته باشن گرفتاری بسیار کمتر. تر میشه حیبونت که حالا بعد خواهیم بسید یکی حیوانات گوستخارن حیبونات شکارگرن که بعضی زاره هم هستن یعنی زرار میرسونن یکی هم حیمانات یه خارم که موزر میستن ولی توش موزرم هست اشهر هر دو اینا شروع کرد به چیز کردن فضیعتم یکی از اولین حیمانات شکارگری که به شفت طبیعتیت فرق بود خیلی طب وفاداری داشت باقلاته و زود با, با انسان اخت شد